دانشگاه تهران چهارده بهمن 90 بعد از اینم هر جا هر ملتی هر گروهی با رژیم سحیونستی مبارزه کنه مقابل پایگاه اطلاع رسانی در سایار در سال 1391 و برای دومین سال متوالی تیه یک نظرسنجی اینترنتی از کاربران خواست تا به یادماندنی ترین جمله حضرت آیت الله خامن را در سال 1390 انتخاب کرده و برای این پایگاه ارسال کنه در پی این فراخان که تا روز 14 فروردین ادامه داشت بیش از 1900 پیامک و کامنت برای پایگاه ارسال شد نظرات دریافتی حاوی گستری متنوعی از موضوعات مختلف سال 90 بود اما سه جمله بیادماندنی از دید مردم. رهبر انقلاب در دانشگاه افسری امام علی علیه السلام در جایگاه سوم ترین جملات سال 90 قرار گرفت. آنجا که در پی اوج گرفتن های غرب و مطرح شدن برخی تهدیدات و تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیت الله خامنه‌ای به این تهدیدات پاسخی محکم دادند. آبان ماه 90، دانشگاه افسری امام علی علیه السلام. ما اهل تجاوز به هیچ ملتی و هیچ کشوری نیستیم ما هرگز اقدام به جنگ خونی نمی کنیم این را ثابت کرده این ملت ایران این را به اثبات رسنده است و بدانند هم آمریکا بداند هم دست دستنشاندگانش بدانند هم سگ نگهبانش رژیم صهیونیستی در این منطقه بداند پاسخ ملت ایران به هر گونه تعرضی هر گونه تجاوزی بلکه هر گونه تهدیدی پاسخی خواهد بود که از درون آنها رو از هم خواهد پاشید و متلاشی خواهد کرد در سال جهاد اقتصادی تحریم های دشمنان جمهوری اسلامی علیه مردم ایران شدت گرفت همزمان با شدت گرفتن موج سنگین تبلیغات استکبار رهبر انقلاب در برابر این حربه دشمن با تحلیل اوضاع موقعیت نظام را نه در شرایط شعب عبی طالب بلکه در موقعیت بد و خیبر داد کردند. این جمله جایگاه دوم محبوب ترین جملات سال نوت را از آن خود کرد این روسیا های بد محاسبگر ها خیال می کنند ما امروز در شرایط شعب عبی طالبیم نیست اینجور؟ ما امروز در شرایط شعب عبی طالب نیستیم ما در شرایط بد رو خیبریم ما در شرایطی هستیم که ملت ما نشانه پیروزی رو به چشم دیده است و آنها نزدیک شده است به بسیاری از مراحل پیروزی با سرافرازی دست پیدا کرده است اما به یادماندنی ترین جمله سال نوت از نگاه کاربران خامنه ایداتای آر من همینجا به این مناسبت این جمله رو عرض بکنم حکام بهرین ادعا کردن که ایران در غذایه بهرین دخالت میکنه این دروغه نه ما دخالت نمی ما اونجایی که دخالت کنیم سریح میگیم ما در غذایه زدیت با اسرائیل دخالت کردیم نتیجه شم پیروزیه جنگ 33 روزه و پیروزی جنگ 22 روزه بود بعد از این هم هر جا بعد از این هم هر جا هر ملتی هر گروهی با رژیم و وارزه کنه مقابله کنه ما پشت سرشیم و کمکش میکنیم به هیچ عباییم از گفتن این عرض نداریم ایاته اما اینکه حالا حاکم جزیره بحرین بیاد بگه ایران در قضایای بحرین دخالت میکنه نه این حرف درست نیست حرف خلاف واقع است ما اگر در بحرین دخالت میکردیم اوضاع در بحرین جلو دیگه میشود میشد مذاکرهی ولیام ولی عمر مسلمین در خطبه های نماز جمعه 14 بهمن تهران درباره ادعای حکام جزیره بحرین ده. و اعلام علمی پشتیبانی از هر گونه مبارزه علیه اسرائیل کاربران سایت این جمله را با اکثریت به عنوان بیادمندنی تلین جمله حضرت آیت الله خامنه ای در سال نووت انتخاب کردند